قصه های هزار یک شب شب سی و سبون. وزیر با زنش گفت مو این بنساوی دشمن جان من است چون این حادث بشنود ملک را آگاه کرده بگوید وزیری که تو را گمان این است که خیانتکار نیست ده هزار دینار از تو گرفته کنیزکی بخرید که کس چنان کنیزک ندیده بود چون کنیزک را بپسندید با پسر خود گفت تو برای کنیز از ملک سزاوارتری. آنگاه پسر او بکارت از کنیزک برداشت و اکنون همان کنیز در خانه وزیر است. ملک از اعتمادی که به من دارد خواهد گفت دروغ همیگویی. او از ملک اجازت گرفته به خانه من آید و کنیز را نزد سلطان برد. چنیز ناچار ماجرا بر ملک بیان کند آنگاه معین بنساوی فرصت یافته با ملک بگوید که من پندگوی مهربان تو ام ولی پیش تو عزت نداشتم ملک او را بپذیرد و به کشتن من فرمان دهد زن وزیر گفت همه کس از داستان کنیز آگه نیست. تو کس را آگاه مکن و کار خود را به خدا بسپار. وزیر اندک آرام گرفت و خاطر آسوده داشت. و اما علی نوردین پسر وزیر از عاقبت کار ترسان بود. روزها در باقها به سر می برد و نیمه شب آمده به نزد مادر می قنود. باز پیش از سباه چنان که کس نبیند به در می شد. تا یک ماه پیوسته کارش همین بود روزی مادرش با وزیر می گفت اگر کار بد دینسان گذرد دختر و پسر هر دو بمیرند وزیر گفت چگونه باید کرد؟ زن گفت امشب بیدار باش چون پسرت بیاید او را بگیر و با وی صلح کن و کنیز را به او ده که هر دو همدیگر را دوست می دارند و من قیمت کنیز را به تو می دهم. وزیر آنشب بیدار بود چون پسرش بیامد. او را بگرفت خواست بکشد مادرش گفت چه خواهی کرد وزیر گفت خواهمش کشت پسر وزیر چشمان پر از عشق کرده گفت ای پدر مشتاب تا بکشتنم که من در دست تو هم آنگاه پدر از سینه پسر برخاست و گفت ای پسر عنیس جلیس را به تو میبخشم به شرط آنکه او را نفروشی و شوهرش مدهی. پس سوگند یاد کرد و با پدر پیمان بست که او را نفروشد و به شوهرش ندهد. آنگاه وزیر کنیزک را بر وی ببخشید. علی نوردین با کنیز به ایش و نوش همی زیست و خدای تعالی حدیث کنیز از یاد ملک بیرون برد تا اینکه سالی به دین منوال گذشت و معین بنساوی نیز از ترس فضل بنخاقان با ملک سخن نمیتوانست گفت پس از یک سال روزی فضل بنخاقان از گرمابه با تن خوی کرده به در آمد هوا در وی گرفته رنجور گشت و به بستر افتاد تا همه روزه رنجوریاش فزونتر میشد تا اینکه روزی نورالدین را حاضر آورد و گفت ای فرزند از روز رسیده نتوان گریخت و از روزی نارسیده نتوان خورد همه کس جام مرگ خواهد نوشید ای فرزند وصیت من بر تو این است که پرهیزگار شو و آقبت بین باش پس شهادتین گفته مرغ روحش در فردوس آشیان گرفت و از قصر فریاد کنیزان و قلامان و خانگیان بلند شد ملک و اهل مملکت با خبر شدند عمرا و وزرا و مردم شهر همگی حاضر آمدند و از جمله حاضران معین بنساوی وزیر بود پس فضل بنخاقان را به خاک سپردند و بقعه بر خاکش ساختند و قاریان بنشاندند و نورالدین به حزن و ماتم بنشست و دیرگاهی ملالت داشت نشسته بود که یکی از دوستان پدرش در بکوفت چون به گشودند آن شخص دست نوردین ببوسید و گفت آقای من کیست که او را پدر نمرده باشد این جهان گزرگاه سید اولین آخرین است تو حزن و اندوه به یک سونه و خاطر از کدورت پاک کن پس نوردین را از این سخنان ملالت کم شد و قرفه را فرش گستردند و در آنجا بنشست و دهتن از فرزندان بزرگان به دو گرد آمدند و به و نوش مشغول گشتند و همه روزه خردی و خوراندی و بخشیدی تا اینکه روزی وکیل خرج به نزد وی آمد و گفت ای خاجه این گونه بخشش ها مال را فانی کند مگر نشنیده ای که گفتند، هر که خرج کند و دخل نشمارد به زودی فقیر شود. نوردین چون این بشنید، با گوشه چشم به سوی وکیل نگاه کرده گفت نه کسی را بخل بینیاز کند و نه کسی را بزل محتاش سازد و این سخنان به گوش من فرو نرود. وکیل از پیش نوردین بیرون آمد و نوردین همچنان بزل و بخشش پیش گرفت و هر یک از یارانش که می گفت فلان چیز یا فلان خانه خوب است نوردین می گفت آن را به تو بخشیدم و پیوسته در صبح و شام خان به یاران همی گسترد تا یک سال بدین منوال گذشت پس از یک سال روزی نوردین با یاران نشسته بود که وکیل نزد وی آمده گفت یا سیدی از آن چه برهزر بودم پیش آمد اکنون مساوی یک درم نقد و جنس ندارم. چون نوردین این سخن بشنید سر به زیر کند و به حزن و ملالت اندر شد. یاران این معنی دریافتند یکی از ایشان برخاسته اجازت رفتن خواست نوردین سبب پرسید پاسخ داد که سن من امشب بخواهد زایید تنها نتوانمش گذاشت نوردین جواز داده او برفت و دیگری برخاست گفت یا سیدی امروز برادرم پسر خود عقیقه خواهد کرد من باید بروم پس یک یک اجازت گرفته به بهانهای برفتند نورالدین تنها مانده عنیسالجلیس را نزد خود خواند و با او گفت دانی که چه بر من رسید و آنچه از وکیل شنیده بود با او باز گفت جلیس گفت آقای من چندی پیش خواستم که این حالت با تو بازگویم شنیدم که تو این دو بیت همی خانی بیا ساقیان راه ریحان نسیم به منده که نظر بماند نسیم زری را که بیشک تلف در پی است به میده که درمان دلها میست آنگاه سکوت کردم و سخنی نگفتم نورالدین گفت یا انیس تو میدانی که من مال به یاران صرف ام و گمان ندارم که مرا به چنین روز ترک کنند و پاداش نیکوی های من به جام نیارند اکنون من برخواسته نزد ایشان روم شاید سرمایه از ایشان گرفته به بیع و بنشینم و لهو و لعب ترک کنم عنیس الجلیس گفت از ایشان سودی نخواهید دید نورالدین سخن او نپذیرفته برخاست و بیرون شد و کوچه ها همی گشت تا به محلتی رسید که ده تن از یارانش در آنجا بودند آنگاه به در خانه یکی از یاران به ایستاد و در بکوفت کنیزی به در آمد نورالدین گفت که به خاجت بگو که علی نوردین برداری ایستاده و چشمش به راه فضل و احسان تو باز است. کنیز رفته خاجه را با خبر کرد. خاجه بانگ بر کنیز زد و گفت بازگرد و بگو که خاجه به خانه اندر نیست. کنیز برگشت و سخن خاجه به نوردین گفت. نوردین با خود گفت اگر این یکی حق نعمت ندانست و پاس صحبت نگاه نداشت شاید دیگران چنین نباشند پس به در خانه رفیق دیگر رفت او نیز چنان گفت که رفیق نخست گفته بود نوردین با خود گفت ناچار همه یاران بر محک امتحان زنم شاید در آن میانه یکی ثابت قدم باشد پس در خانه یاران یکان یکان رفته در بکوفت و ایشان خیشتن را بر او آشکار نکردند علی نوردین به نزد عنیس الجلیس رفته به او گفت گفت آقای من نگفتم که دوستی ایشان سودی ندارد نورالدین گفت هیچ کدام ایشان روی به من ننمودند انیسل جلیس گفت آقای من متاع خانه را بفروش و صرف کن. نور همه روزه چیز همی فروخت تا در خانه چیزی نماند و با انیسل گفت اکنون چه باید کرد؟ انیسل گفت تدبیر این است که مرا به بازار برده به فروشی تو میدانی دانی که پدرت مرا به ده هزار دینار خریده شاید خدا گشایشی کرامت فرماید و اگر خدا بخواهد باز ما را به یکدیگر خواهد رسانید گفت ای انیس الجلیس تو بر من آسان نیست و من از تو شکیبان نتوانم بود انیس الجلیس گفت به من بسی دشوار است ولی چاره چیست دست عنیس را گرفته اشک از چشمانش همی ریخت آنگاه عنیسالجلیس را نزد دلال برده گفت به هر قیمتی که خود میدانی ارزش دارد بفروش دلال گفت یا نورالدین مگر این عنیسالجلیس نیست که پدر تو را از من به ده هزار دینار بخرید نورالدین گفت آری پس دلال صبر کرد تا بازاریان از هر سو گرد آمدند دلال برخاسته ندا همی داد و مدحت عنیس الجلیس همی کرد تا اینکه یکی از بازارگانان چهار هزار و پانصد دینار قیمت داد و به گفتگو اندر بودند که معین بن صاوی وزیر از آنجا بگذشت نورالدین را دید که ایستاده است و با خود گفت از بهر چه ایستاده است؟ او را به کنیز خریدن نمانده؟ شاید توهیده است گشته کنیز همیخواهد بفروشد اگر چنین باشد دل من آرام خواهد گرفت پس دلال را آواز داد دلال زمین ببوسید وزیر گفت این کنیز را که مدهت همی کنی من مشتری هستم دلال کنیزک را نزد وزیر آورد وزیر شمایل نیکوی وی را بدیده بسته کمندش گردید و از قیمتش باز پرسید دلال گفت تا چهار هزار و پانصد دینار رسیده بازارگانان چون وزیر را مشتری دیدند و ستمگری او را میدانستند، پراکنده شدند و قیمت افزون نتوانستند کرد. پس وزیر به دلال گفت دیگری استادنت از بهره چیست؟ من کنیز را به چهار هزار و پانصد دینار خریدم. دلال نزد علی نوردین رفته گفت کنیز را بیبه ها بردند نوردین سبب باز پرسید دلال گفت ما همی خواستیم که در قیمت بگشاییم نخستین بازرگانی که قیمت داد چهار هزار و پانصد دینار بود و نوبت افزون کردن به دیگری نرسیده بود که این ستمکار به بازار آمد و کنیز را بدید و به همان قیمت قبول کرد. گمان دارم که کنیزک را بشناخت. اگر همان قیمت را بدهد از فضل پروردگار خواهد بود. مرا بیم آن است که براتی نوشته به دیگری حواله کند، و او را غیبت تو بسپارد که چیزی مده و تو همه روزه مطالبه کنی و او مسامحه و مماطله کرده به فردا و فردای دیگر بیفکند. پس آنگه تو را برنجانند برات از تو بگیرند و آن را بدرند آنگاه تمامت قیمت کنیز را زیان خواهی کرد نورالدین چون این سخنان بشنید گفت تدبیر چیست دلال گفت من راهی بنمایم که اگر آن را پیشگیری بسی سود خواهی کرد و آن این است که همین ساعت بیا کنیز را از دست من بگیر و تپانچه بزن و با او بگو که به سوگند خیش وفا کرده تو را به بازار آوردم و به دلالت دادم که بفروشد اکنون بیا تا به خانه رویم ای نور دین، اگر تو به سان کنی وزیر چنان داند که از بحر سوگندی که یاد کرده ای او را به بازار آورده ای نور دین گفت تدبیر همین است پس دلال پیش رفته دست کنیز بگرفت و با وزیر گفت صاحب کنیز این جوان است که همی آید چون نور نورالدین نزد دلال رسید کنیز از دست دلال بگرفت و تپانچه بر زد و گفت من از بهر سوگندی که یاد کرده بودم تو را به بازار آوردم اکنون به خانه بازگرد و از این پس مخالفت مکن وگرنه من به قیمت تو محتاج نیستم که تو را بفروشم من اگر از چیزهای خانه بارها بفروشم هر بار به قیمت تا چیز خواهم فروخت معین بن ساوی به نوردین خشم آورده گفت ای تخم حرام هنوز تو را چیز مانده که بفروشی نوردین جوانی دلیر و مردانه بود این سخن بر خود همبار نکرد و کمر ابن ساوی را گرفته از زین به زمین انداخت. ابن ساوی در میان خاک و گل بغلتید و علی بن خاقان مشت بر وی همی زد تا آنکه مشتی بر دهانش آمده دندانهای او فرو ریخت و خون دهانش زنخ او را رنگین کرد. و دهتن از خادمان ابن ساوی با او بودند. چون کردار علی نوردین را با خاجه خیش بدیدند، دست به خنجر و شمشیر بردند بازرگانان و مردم شهر از آنجا که علی نوردین را دوست می داشتند به خادمان گفتند اگر ابن ساوی وزیر است علی بن فضل وزیر است گاهی با هم به صلح و گاهی به جنگ اندرند اگر شما به علی نوردین هجوم آورید شاید از شما ضربتی به او رسد آنگاه به کشتن خواهید رفت سواب این است که شما در میان ایشان داخل نشوید و ایشان را به حال خود گذارید خادمان سخن مردم بپذیرفتند. علی بن فضل چندان که خواست ابن ساوی را بزد و در گل و خاکسترش فرو برد آنگاه کنیزک را گرفته به سوی خانه آمد و اما ابن ساوی به خون و گل و خاکستر آقشته پیش ملک رفت ملک گفت این چه حالت است گفت ای ملک، امروز از بازار میگذشتم خواستم کنیزک تباخ بخرم. درمیان کنیزکان کنیزی دیدم که به آن خوبی کس ندیده بود. دلال گفت، این ازان علی بن خاقان است که ملک ده هزار دینار به پدر او داده بود که کنیزی بخرد. چون این کنیز را بخرید و نیکویی او را بدید به پسرش بخشید. چون فضل بن خاقان بمرد، پسرش راه تبذیر و زیاد روی پیش گرفت تا کارش به فقیری کشید. کنیز را به دلال داده که بفروشد و بازرگانان او را قیمت داده، اندک اندک افزودند تا به چهار هزار و پانصد دینار رسیده. من با خود گفتم بهترین است که او را از بهر ملک شرا کنم. آنگاه با علی بن خاقان گفتم قیمت کنیز از من بستان. گفت من کنیز به یهود و نصاری می فروشم و به تو نمی فروشم. گفتم از برای خود نمی خواهم. از بحر ملک می خواهم. چون این سخن بشنید خشمگین گشته مرا از خانی زین فرو کشید. چون من پیر و ناتوان بودم مرا به سان کرد که می بینی. این بگفت و گریان شد چون ملک آن حالت بدید و آن مقالت بشنید به خشم اندر شد و چهلتن شمشیر زن را گفت که به خانه علی بن خاقان رفته غارت کنند و خانش را ویران سازند و او را با کنیزک گرفته بازوان ببندند و پیش ملک آورند خادمان قصد خانه علی بن خاقان کردند سنجرنامی از ایشان که پرورده احسان فضل بن خاقان بود بر خود هموار نکرد که ولی نعمت زاده او را با خاری و مزلت دستگیر کنند خود را زودتر از دیگران به خانه علی بن خاقان رسانید و گفت ابن صفی دام بر تو نهاده اگر تو را به دست آورد جان در نخواهی برد. انغریب است که چهل تن از خادمان رسیده تو را دستگیر سازند. همین ساعت کنیزک را برداشته بگریز. پس سنجر دست بر جیب برده چهل دینار به در و به نورالدین داد و گفت یا سیدی اگر زیاده بر این زر میداشتم مزایق نمیرفت. نورالدین زرها به و انیس الجلیس را از چگونگی آگاه کرد. در حال از شهر به در شدند و همی رفتند تا به کنار دریا رسیدند. دیدند که کشتی را همی خواهند برانند و ناخدا به کنار کشتی ایستاده میگوید هر کسی توشه فراموش کرده یا چیزی بر جا گذاشته زودتر کار انجام داده بیاید مردم کشتی گفتند هیچ کاری نداریم ناخدا گفت تنابها باز کردند و بادبان بیافراشتند در حال نورالدین برسید و گفت ای ناخدا به کدام شهر خواهی رفت ناخدا گفت، به دار و سلام بقداد خواهم رفت. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروبه است